سلام و درود و وقت بخیر خدمت همه شما شنوندگان خوب و دوست داشتنی کانال هزار افسان. امروز هم در خدمتتون هستم با یک قصه دیگه از دنیای پریان. اسم قصه امروزمون هدیههای های پریه. بریم که با همدیگه دیگه بشنویم. معمولاً اینطوریه که محیط زندگی آدم ها کما بیش ذهنیت و خلق و خوشون رو نشون میده پس شاید به همین علت بود که گلپری در کاخی زیبا زندگی میکرد که باقی دلپذیر داشت که در تصور هم نمیگنجید باغ پر از گل و درخت چشمه و آبگیرهای پر از ماهی بود همه چیز در این باغ عالی بود پری انقدر مهربون و جذاب بود که همه اون رو دوست داشتند و تمامی شاهزادگان و شادختان جوانی که در دربارش زندگی می کردند فقط به این علت که در کنار پری به سر می بردند خوشبخت و سعادتمند بودند اونها موقعی که بسیار کوچک بودند پیش اون اومده بودند و هرگز سرکش نکردند تا اینکه بزرگ شدند و آماده رفتن. وقتی زمان اون رسید پری به هر کدوم ای داد که دوست داشتند، اما داستان ما درباره شاهدخ سیلویه پری اون رو با تمام وجودش دوست داشت چون مهربون و اصیل بود و حالا به سنی رسیده بود که زمان رفتنش شده بود. در این موقع پری باید هدیههایی بهش می داد. اما از اونجا که پری آرزوی بزرگش این بود که از کامیابی شاه هایی که بزرگ شده و از اونجا رفته بودند با خبر بشه تصمیم گرفت قبل از اون که زمان رفتن سیلویا فرا کاری بکنه. پس پری تصمیم گرفت که هدیهایی براش آماده کنه. یک روز کالسکش رو که چند پروانه اون رو میکشیدند آماده کرد و به سیلویا گفت: سیلویا میخوام تو رو به درباره ایریس بفرستم. بانو ایریس با کمال اشتیاق تو رو هم به خاطر من و هم به خاطر خودت میپذیره. بعد از دو ماه پیش من برمیگردی و اون وقت میخوام هرچی دربارش فکر میکنی برام تعریف کنیم. سیلویا دلش نمیخواست بره. اما چون پری اینطور میخواست چیزی نگفت. وقتی دو ماه به پایان رسید، اون با خوشحالی پا به کالیسکه پروانه ها گذاشت. میخواست با شتاب به هرچه بیشتر پیش گلپری برگرده. گلپری هم همقدر دلش میخواست اون رو دوباره ببینه. وقتی رسید، پری ازش پرسید حالا فرزندم، بگو این سفر چه تأثیری روی تو داشت؟ سیلویا جواب داد، بانو، شما منو به دربار ایریس که به اون نعمت زیبایی بخشیدی فرستادی. اون به کسی نگفته که شما این حدگر رو بهش دادید. هرچند که بیشتر اوقات درباره مهربانی شما صحبت میکرد. به نظرم رسید دل اون که در نگاه اول واقعا منو شگفت زده کرد اون را از دیگر صفات نیکوش دور کرده. به نظر میرسه که اون میخواد با جلوگری خودش رو به رخ دیگران بکشه. اما زمانی که اونجا بودم بدبختی به اون روی اوبرد و بیمار شد. با اینکه به تازگی بهبود پیدا کرده زیباییش رو کاملا از دست داده به طوری که از چهرش نفرت میباره و کاملا نامید شده اون دست به شده تا به شما بگم چه اتفاقی افتاده و تقاضا داره دوباره دل به حالش بسوزونید و زیباییش رو بهش برگردونید چون شدیدن بهش احتیاج داره حتی اون زمانی که خیلی زیبا بود صبورتر هم بود و قدرت تحمل بالایی داشت و با هر چیزی سر سازگاری داشت. حالا که زش شده فقط به این فکر میکنه که دوباره زیباییش رو به دست بیاره. من واقعا فکر نمی کنم که از اون صفات پسندیده دیگه چیزی براش باقی مونده باشه. اون از تمامی این چیزها در مورد خودش آگاهه. پس حالا میتونی تصور کنی که چقدر غمگینه و چقدر به کمکت نیاز داره. پری با صدای بلند گفت هرچی میخواستم بدونم گفتی، اما افسوس نمیتونم کمکش کنم. من به هر کس فقط یک بار هدیه میدم. مدت زمانی همه چیز در کاخ گلپری به خوشی گذشت. بعد دوباره سیلویا رو صدا زد و بهش گفت که باید مدتی کوتاه پیش شادخت دافنه بره. کالسکه پروانه اون رو با خودش به آسمون برد و در قلمروی کاملا عجیب پیاده کرد. اون مدت زمان کوتاهی اونجا موند چون پروانهای پیامرسان پیغامی از طرف پری براش آورد که هر چیز زودتر باید برگرده وقتی برگشت فریاد کشید آه بانو این چه جایی بود که منو فرستادی بانو پرسید یعنی چی موضوع چیه؟ دافنه یکی از شاهدختایی که از من اگر به درستی یادم باشه هدیهی شیوای سخن را گرفته سیا با لحن قانه کننده گفت نعمت شیوا سخن چندان فایدهای برای این بانو نداره درسته که اون خیلی خوب حرف میزنه و کلمات رو به خوبی انتخاب میکنه اما دست از سخنرانی نمیکشه و اگر چه ممکنه حرفاش اول برای کسی سرگرم کننده باشه در نهایت بسیار خسته کننده است اون گرد همایی برای سر و سامان دادن به امور حکومت رو خیلی دوست داره چون در اون جلسه ها میتونه هر قدر دلش میخواد یک ریز حرف بزنه لحظه ای که حرفاش تموم میشه تازه خودش رو آماده میکنه تا سر صحبت رو درباره یه دیگه باز کنه. حالا هر موضوعی که میخواد باشه. آه چقدر خوشحالم که تونستم این چیزها رو بگم. پری به نفرت آشکاری که در حرفهای آخر سیلویا بود لبخند زد. اما بعد از اینکه مدت زمانی بهش فرصت داد تا خستگی سفر رو از سنش بیرون کنه اون رو به دربار شاهدخ سینتیا فرستاد و گفت که سه ماه در اونجا بمونه در پایان اون مدت سیلویا با شادی و رضایت خاطری که هر کسی با بودن در کنار دوستی عزیز احساس میکنه برگشت پری طبق معمول کنجکاو بود بدونه که اون درباره سنتیا که از نعمت خوشرویی و مهربانی مند بود چطور فکر میکنه و چه نظری داره. سیلویا گفت اول فکر میکردم که اون باید خوشبخترین شاهدخت جهان باشه. اون هزار عاشق داره که با همدیگه به خاطر جلب توجه سخت اون رقابت میکنن. چنانکه من تقریبا تصمیم گرفته بودم چون این ای بخوام. پری حرفش رو کرد و گفت واقعا نظرت همینه؟ سیلیبیا جواب داد بله، واقعا نظرم همین بود اما هرچی بیشتر در اونجا موندم متوجه شدم که سینتیا از تای قلب خوشحال نیست اونکه که مشتاقانه با هر کسی با مهربانی رفتار میکرد نمیتونست با دیگران صمیمی بشه در نتیجه به زنی اشبگر تبدیل شد حتی دلدادگانش میدونستند کسانی میتونن بهش نزدیک بشن که بی نهایت زیبا و جذاب باشن و... دیگران بدون داشتن این سفات براش ارزشی نداشتند طوری که در پایان کار دنبال کار خودشون میرفتند و متکبرانه اون رو ترک میکردند پری گفت از تو خشنودم فرزندم مدتی که در اینجا هستی خوب استراحت کن و از زندگی لذت ببر میخوام تو رو به درباره فیلیدا بفرستم سیلویا از فرصتی که بهش داده شده بود بسیار خوشحال بود اون هنوز تصمیم نگرفته بود که برای خودش چه حدیهی بگیره. زمان انتخاب هم بسیار نزدیک شده بود. کمی بعد پری اون رو به درباره فیلیدا فرستاد و با علاقه زیاد منتظر گزارش اون موند. سیلویا بعد از برگشت گفت سالم و تندرست به دربارش رسیدم و اون با مهربانی خیلی زیادی از من پذیرایی کرد و بلا فاصله هوش درخشانی رو که بهش هدیه دادی به کار گرفت. اقرار میکنم که خیلی شیفتر شدم و یک هفته به فکر فرو رفتم که چیزی دلخواهتر از تیزهوشی نیست زمان مثل ترفندی جادویی گذشت دربار اون خیلی باشکوه بود من اشتیاقم رو برای به دست اوردن چنین هدیهای زودتر از دیگران از دست دادم چون این هدیه مثل هدایای قبلی باعث رضایت خاطرم نمیشد به تدریج از چیزی که در ابتدا منو بسیار خورصند کرده بود خسته شدم مخصوصاً هر چی بیشتر دقت کردم متوجه شدم محال همیشه هوشیار و خوش خوب باشم بدون اینکه گاهی رفتارهای نامطبوع از ما سر بزنه حتی باید گاهی کاملا آماده باشیم همه چیز رو حتی بدترین چیزها رو به اتفاقاتی سرشار از شوخ طبیعی و خوشی تبدیل کنیم پری از ته قلب از افکار سیلویا خوشحال بود و از اینکه اینقدر خوب تربیت شده بود احساس خوبی داشت. زمان اون رسید که سیلویا هدیه خودش را دریافت کنه. همه همراهانش جمع شده بودن. پری در وسط ایستاد و طبق عادت همیشگی پرسید که در این دنیای بزرگ چه چیزی بهش هدیه بده. سیلویا یک لحظه درنگ کرد و بعد جواب داد روحی آرام و پری این نعمت رو بهش بخشید. این هدیه زیبا زندگی را برای صاحبش با خوشبختی همیشگی همراه میکنه و تمام کسانی هم که با اون در ارتباط هستن از اون بهره میبرند. چون این کسی از زیبایی آرامش و رضایت خاطر برخورداره و این آرامش و خوشدلی در چهرهش نمایان میشه اگر گاهی اوقات به خاطر اتفاقی بعد یا ای این خصلت پنهان بشه تلخترین حرفی که ممکنه کسی بهش بگه اینه که امروز رنگ سیلویای عزیز پریده هرکس به صورتش نگاه کنه غمگین میشه برعکس هر وقت اون شاد و حال بود روشنایی حضورش همه رو که سعادت بودن در کنارش رو داشتن خوشحال میکرد قصه که ما به سر رسید سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها